الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الله على سيدنا رسول الله. على رب العالمین. ﷲ علیه علیه وسلم. ﷲ علیه وسلم. حفظ شد به مناسبت روایات سحر رو که در کتاب موارد شده بکنین هرچند که در روایات ما این در مصادر ما مثل وسایل ما بعد روایات رو بیشتر تو ابواب مفاجر آوردن اما در کتب اهل سنت این طور نیست در یک مقدار از کتب اهل سنت روایات رو تو کتاب تب آوردن سرای سحر رو مثل سری بخاری و بعدم ادهی زیادی از سطور برده دو بخاری روایات رو تو ته باوردن ادهیشون هم تو حدود باوردن بناسی که صاحب یو یکتر یا نه این رو تو حدود باوردن از از اکراب بخاری نوزا از سهر آمده و که معظم سهر و رویه و اینها رو توی عباب و ته باوردن و یک احتمال هم داره ولی میگن یهود مدینه اهل سه بودن یهودی در مدینه بودن یعنی کسانی که ساهر بودن و یا حالا کهانه یا ارافه یا قیافه این چند تا فرقی که تا حالا مثلا کردیم در محچه بیشتر از محبکین بودن یعنی هم نبودن یعنی اون چهره بزرگ توی یمن مثلا یمن زیاد بودن توی یمن بزن جای دور بودن و هر مهندهی هر منطقی هر نمیه از محلات و عشایر یه کانه های معروفی داشت یه معروفی داشت برای همه گرتکاری پیش اونا میرفتن اما در مدینه ظاهراً بیشترین کار بود به خاطر که یهود اهل کتاب بودن و اوز و خضر جوبری در مدینه بودن از نعمت علم غالبا محروم بودن این اینها اهل کتاب میگفتند، یه مقدار مذاواست با هم با صرف انجام بیدن که مثلا فرض بکنیم به که یه مقدارش هم با دمیرن مثلا گرفت بزن و پاشتوش این نفرسی بزن چیزی بکنو دمیرن که این دمیرن در خود قرآن هم آمده و من شر نفاسات فلاغت مثل شر نفاسات فلاغت از منکه گفته شده که سحره غالبا مرد گالی هم زن هم زنده. بالله غالبا این سحره مرد بودن در اینجا میگن میگن که سهر خارجی بوده چون اون لگیده نه یهودی بودن سهر کردون که در, در برات ما هم داری برد میکنم سهر میگن دخترهایی داشت که اونها هم سفاره بودن اونها با کمک پدرشون این سهر انجام اجام داد و به رضا آیام در نخواستات فراغه رو شد. این نقاصات فراغه همین دختران شد. لبیده در حفظای یاودی هستند. الان که به ما این مسئله سه در مدینه بیشتر جنبه ارتباط باطل و معالجه با اون قصه ایم که دیروز من مجمنش رو خوندم و خالد کاغوری و هم همین بود دکتر که مریض شده بود از روی دعایی رو دادن در روش دکتر خونده این خبیز از این بدنی بیا بیرون و آمد بیرون این یه نوع قصه خاندنه نوع این رو رابطه شو با سه نمیدونستن و بعد در این ما که علم نمید مطالب و این نید. در آیات تحرز به سه در مکه بیشتره آیات مکیه اما در روایات تحرز به در مدینه نه در مکه و این نیست این باشه چون در آیات مکی بیشتر اصل حقالد و اصل نوبت و ارتباط پیغمبر و آلم این مطرح نیجه این تصور رو از, از جاهلی ها داشتن که اصلا پیغمبر صاحب دین و نقوبت رو یه از این, این جاهلیت با قولیم سه دو قول جاهلیت رو قرم از آن هم خوب در دراستات در بحشت ها و هایی که در غربی هایی اصدار دن دین نگو یعنی دین اصطلاح خودشون اول سهر بوده بعد بوده بعد علم بوده حالا میرونی که این درجات از قرن ایدام و ایدام رانستان که در روپا میشه دوران علمه که یعنی به اصطلاحشون دوران دین دیگه تمام میشه و برید نیز این که در آیات مکی روی سه تأکید شده یا خود را سورباق بازان ساهر. چون مکه یک شهر مذهبی بوده به خلاف مدینه لذا بازه بود خیلی هم برکن در مکه این مطل رو شایعه کردن که ایشون صاحب بود و حتی قصه ارت موسا و سهر ارت سه و, و سابقین رو هم برای همین جد اما در مدینه شهر مذهبی نبود و خیلی عجیب آیات قرآن که نا در قرآن جواب همین به جوی جران قریب آور که دین روی نو سه میزن شد یه مقدار شدت قرآن در رابطه با همین باشه. که نفت هر گونه ارتباط برای ارتباط بین دین و سه هم باشه و در, در آیات مکه چون مکی یک شهر مذهبی بوده و سعی می کردن نبوت و با سه رقصدن آیات مکه بیشتر در این تحکیده که سه دین اصلا مخالف سهره در مقابل سهره بلکه در بعضی از ظاهر آیات, آیات مکی ظاهرش این که اصلا سر دیامبه کفر زده کفر با شهر نزدیکه نه دین دین از شهر دوره در مدینه ظاهرا اگر راست باشه که یهود مدینه از سر در مساله چیز استفاده میکردن ترک و اینها ظاهرا دو بخش از اموری که راجع به سر بوده در مدینه بیشتر لازم یکی رابطش با سر با سر یکیش هم راجع به حکم حدود شدش که که ساهر بود چه کار بشه؟ چون در این جهاز هم روایت دارن که مثلا پهنمان یختر ساهرون مسلمین یختر ساهر کفار لا یختر چون خود یهود هم ساهر داشتن بعید نیست که در آیات در مدینه دیگه آیاتی این شان نازل نشده اونچه که ما در مدینه داریم روایاته در بخش روایات در دو جهت ترکید شده حتی تو روایات ما هم داریم عجر و صاحب اما تأکیب بیشتر به خود سهره یا اصحاب ما مثل ساهاشاری این رو تو بخش مقاسه محرمان امردن به الله اگر یک بخش بزرگان کلن برای سهر قرار بودن بهتر بود برحال بوده طرق دین ما و آیان اهل سنت رو در هر هم و برید نیست این اختلاف در حقیقت یک ریشه‌هایی هم در خود تاریخ اسلامی داره. در آیات مکی سحر و اذابیه دین بررسی کرده و رواهده و در آیات مدنی روایات مدنی سحر و اذابیه احکام مسائلی که حدی برای جاری میشه آیا مثلاً جایگزین ثبت میشه؟ مخصوصاً من از که یه مقدار زیادی از مسائلی که بوده جنبه‌ی که ما میگیم به اصطلاح خاصی خودون چی مکچی که اینها رو روغیه میگفتن و یه نوع الفاظ به اصطلاح مورتب و همچین چیز بوده به اصلا جنبه مثلا سج و قافیه و حالا من این شاله سالات بعد که یک میادای بیشتر بشه چون به خود پیغمبر هم نسبت داده شده یه مقدارش رو میخونیم چه از کتاب های خودمون و از مسادری کلان در اختیار ما هست چه در کتاب های دیگری که اصلا در اون زمان گفته میشده خونده شده یعنی حتی به پیغمبر هم نصفت داده شده اینجا هم به نظرم نکیتوس رو به نظرم عمرده یا خدا حالا زهان ادباب دیگری سه رو برده حالا روایات رو خوندیم و امس که در وقت ادباب در باب سه به دهازه سندهی تمام نیستن از وقت ساقه در ادباب دوی هم ادباب داد که از هم ادباب خودش که سندهش اجمالا بهتر باشه در این بابی که ایشون قرار داده این رو میگم از جونه رو حالا از روایات جامال احادیسه میخونیم حدیث شماره شش از باب 28 و باب ما امباب از باب بل اصناد از سندیق نمحمد برزاد میشوند اسمش عوانه عوانه نمحمد مثلا صورت سبزگون دیگه بهش سند بود قال حمدستان عبالبختری و جعفر و ابی محریه نعبی طالب خواهد این رو سابستان شدیه وجود حضور دلیه با دیگر من تعلم شیعن منسته قلیلن اون کسی هم فقط کفر رواست به خیلی رقیق آبا شاید خودش خود اول وقتلی و کان آخر احجهی بربه و حد دهو انیومتر الا انییتو سبا باید و دیگه رواست بعدی که ایشون دن از سکونی که این روایت مضمونش اینه که این چون در باب حدود ما فعلا اینجا متعرضش نمیشیم این روایتی بوده در میان اهل سنت هم هست اینشالله وقتی فقهش متعرض شدیم اجمالا متعرض میشه اما تفصیلش تو حدود در این روایت به اصانی به بوده لکن اونی که الان در اختیار ما هست از این روایت از کتاب اول کافی بعد تحضیب فقیه به عنوان سکونی بعد کتاب تحضیبه که از کافی گرفته و کتاب مرد و و مرد کتاب پیند و شرایل که باز از کتاب سکونی گرفته از زیر زیر معروف و اخیران هم در این کتابی که به نام جهتری معروفه در اونجا هم آمده اون یاد ارز کردم به ایسنا واحد هم جعفر ربی هم آبای هم علیه و از روایت این جوریه روایت قال رسول الله که شبه عرض می کنم که آیا رسول همون ترزین حکم شده نه صاحب المسلمی یکتر و صاحب الکفار لا یکتر رید رسول الله و لهم لا یکتر صاحب الكفار. قال وله هم نه و شرک مقرونان البته مقرونان هم آمده در کتاب جعفریات جهفری تیران مقرونان دو تا کبوده با هم. یعنی حقیقت شرک و سهر یکیه البته نه با شرک میگو کفر باید میگو که اولش هم کفر زاده چون شرک اگر باشه مال مکه است. کفر اگر باشه مال مدینه است. و ظاهرن این از مدینه باشه و این در مکه باشه و در دعایم ما از علیه نبیجا هم نعیده از کلن شواهد نشون میده که احتمالا از همون کتاب معروف همین المومنین راجع به خضای آرسان هم احکام باشه. احتمالش خیلی قدید اون وقت همین بعد از اینکه این مطلب فرمونه که صاحر و کفار لؤي لای... فرمون ولدالازاده که لم يخط رسول الله ابن عاص یهودی البته معروف در اسمش ابن اعثم نه آسم ولی جو ابن آسم. و ایشون دبیب ابن احسن الذي سهر بعد داره قال علي في اداره شهر رجلان عدلان قال رجل من المرجنين ان سهر قط لعنهو کفرون و سهر کفرون لعنهو کفر و سهر کفرون این احتمال قال علیون چون من سابقه هم عرض کردم شواهدی که ما در دست داریم این کتابی بوده به نام قضا یا وستان عمل احکام مال امیر المحصوب و امیر المومنی گاهیم به کسی بیگه نستردازی می شده و ابو رافع یا را بسر مثلا این کتاب صابت می شود و درست بود اولین کتاب رسمی در دنیای اسلام طبق عباب فعله بشه شده یعنی فعل رو مدربن کردن مثلا از طلاف دخواه یعنی به وقت مخلاف توضیح تاریخ شعر خریده کار امیر زمان عمر تقاضا کرد درخواست امیر امونی این بود تر و امون فرنگیشان که ما صحابه بیایم سنن رسول رو با با گرم میکنیم سنن رسول در طلاف سنن رسول در عمر مدتی مشاورت کرد و آخرش که این کار نشد چون این کار گرفت و طبعاً در این کار که عمر گرفت عمر خوب یه خطب خاصی داشته بید تا مدت ها از آثار نفاظ انفقند واسه غیر قدسیه بود تا مدت ها این محلت میموند این نون تا زمان آمرد حبدالعزیز به مرتبه این شکسته شد یعنی حدود سال سر آمرد در حدود سال سر آمرد در حدود سال 99 به حکومت رسید 101 هم ترسلت برزر درماری برای برای برمان کشه شد متقاب متقاب اون سادش نشیدن خبرش کردن حالا یه حالا کل این آثاری که این مرد نرون فقط واقعا عجیبه مصافر. مرد خوقلاده این سالا واقعا ناگوارد امام با اون جرأت داشتن بعد 300 سال خیلی عجیب بعد از یه بیا عبدالرضا زبکی رو فقط من اومدی تا لایکیشو رو بره برای اون تو بودی برای تو دیگه بزرگی داره امام هرندی که در این فصله کم آثاره خیلی بزرگی رو انجام داد این بیا یه بود فرستاد مدین مقدمات کار آموزه کن این کار به نتیجه نرسی کار و مرد عبریزه به نفیجه. این مال سال سر اون وقت نادر شده که امید مومنی سال بین سال سی و هست چه کار انجام داده این در دوران خلافتشون وقتی به کورو داشتی بردن این کار را انجام دادن کتاب بزرگی مولد به نام قضای یا سنن و احکام این سنن رو تدریم کردن استمالا به ده دهی از پرونده های قضایی از دهی از اتفاق افتاده تو همین مجموعه بوده گاهی برنیرمانون نصفر داده شده گاهی به عبورافه نصفر داده شده به پسر عبورافه گاهی هم به به اصطلاح اون آهی آه مرد دیگه که حارث همجانی نصفر داده شده حارث مرد هم دنه به ازی داده شده در این کتاب کتاب بزرگی بوده بین از خواب ما یک شرمی داره تقریبا حالا یکی وقتی جا افتاده بود دیگه زمان اموسان داره جاش از درس میگه. میده دقیقا هم نمیدونیم چرا ما حالا دقیقا علتش با هر حال بنظرتون اثر ما این کتاب رواش پیدا نمی کنه با که موجود بوده این از زمان کلهین یا زمان صبیو ما اثر کتاب رو وجود خارجیش رو میدونسته میدونه در زمان کلهینی یکی از آثار وجودیش همین کتاب جامعه الاسلامه البته نیمیشه که داخمان اون چه از علیه نروی کرده در این کتابه همون این احتمال هست در دائره احتماله اون چه رو که از علیه سلام الله علیه نروی کنه در کتاب دائم, دائم این احتمال هست که از کتاب قضایه و سننه و باشه چون این کتاب دائم الاسلام مابین کلینی و صدوقه به لحاظ طبقه چون کلینی 339ه 29ه هم 382, 362, 362. به مابلنر, صدوه هم 381 361 و 63 ایشون به لحاظ طبعه مابینه کلینی و صدوقه. و اگر ایشون در اختیارش بودن درمه در ایشون چون درمه ساکن بود در اختیارش بوده به طریق اولا باز بگید در بغداد یا کوفه یا قم وجود داشته خیلی بقید یا اینجاها وجود نداشته شواهد حاکی که این کتاب وجود داشته اما اصفان ازش نهر نکردن خیلی بسته خیلی طولانی، میخوایم واردش بشیم. از که کتابی آخرین از همین بازی نامن چاپ شده دنامه علی ال البته کتاب بسیار نفیسیه. در اونجا دو بار یا سه بار اصلا اسم کتاب میبره و هم نهار میکنه. سالیانی که اون کتاب داره به اینه در فهرست شیخ آمده که شیخ توصیه. که نشون میده. هر حال کتاب بوده، اما شیخ از اون کتاب چه ناریم کنه؟ ایشون مستقیم از اون کتاب نارو. من توضیحاتی اگر دادن یه طولانی صحبت نکنن احتمال داره که این متن میخوره به همون کتاب انا علی ان رسول الله صلی الله علیه و آله یختل عصای الله گفت دیگه یا رسول الله و نه نه یختل قال لنكف از منعه سے و قال علی و نذر که لم یخذ رسول الله ابن عاصم یهودی الذي سحره به نظرم به کتاب میخواد به عبارت همون کتاب به قضای و احکام میخواد. قال علییون فی ازا شهد و عدنان علا رجل من المسلمین انهو سهر قطع ظاهرا این تحریماتی بوده که به عنوان کلمات و به اصطلاح آراء خود امیر المؤمنی قیلت همون روایتی که از رسول الله نهرو شده این تکرار نیست به نظر من یعنی من زوه با خودم این میگم چون مشکل اینه که این کتاب الان در اختیار مالی دائم هم اون چی در دائم برده تمام مرسله هیچ سندش رو اشاره نمی کنه این اشاره این اشاره از تصویه این سند در کتاب ایزاه آمده حالا از اجایب روزگارم ایزاه یک مشکل در کل دنیا نمی خیلی غیر از این نسه که از آن اون چاپ شد چاپ گان توی ایران موجوده، از همون نسرت ما یک نفر از این آ آلمانانی نام آادلونگ مال او بود نسسه در که او بوده الان ما از ایضا ک در دنیای خود هم یه نسه داریم که واقعا کتاب مفیده. چون آ سالال درراحتی نام ندارد اون خیلی شوهر بکن که این کتاب مال او هست یا مال اون نیستقال علی هم که ادارشه در اجلان اادان الا رجل من المسلمین انهو سهر او سهل انهو کفر و سهر و کفر بعد برم ورزکره اللهی کتابه قید نظر من تعابل تعابل کتابه نینو خواهی که مثلا این اون داشتن صحبت میگرم به ذهن من میاد همون کتاب ازای الله سبحانه الاحکام باشه فقال جل رو و تب اماتت و شیاطین الامور که سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفره یا علمون الناس اینشالله از خواهیم کرده آشو که بحثایی تقریبیش یکی از عدلیه کسانی که میگفتن زهر کفره همین آیه هم هست ها بقیم اشاری دارن فا اخبر جل ذکره ان سهر کفرون تعابیر تعابیر کتابتیه فا من زهر کفر فیوخت از صاحب مسلمی لرنه کفر و صاحب مسلمی لرنه کفرون کما جوان رسول الله قال علی و الله علیه و حاضر شانده قرآن خیلی به نظران واضحیم که عبارت عبارت تعلیفیه عبارت عبارت حالا ممکنه حالس ابن حالس ابن عبدالله احور همدانی رحمه الله از امام شنیده او یاد کرده باشه از ظواهر عبارت مرموم نجاشی در میاد که این کتاب مال علی ابن عبدالله نیست اشتباه باشه چون کتاب رو به ابو رافع نسبت میده در یک جایی دیگر نجاشی نمیدونم چون نجاشی این کاری کرده همین کتاب رو به عویدالله هفت نه بیر رافع نسبت داده خیلی دیگه از جاییه یه گوف نجاشیه کسی تا آشانه باشی نمیتونه بفرمه که من شرز و بعدم با حارث ابن عبدالله اول حارث اول همدانه اول یه شش این حالس مرد مولایی بوده در اون زمان با اینکه این جور علم ها بوده حتی ریاضیات و مواری سنا رو کاملا مسلط شده ریاضیات بوده. یعنی به عبارت اون خود کوفه خوب دقت بکنید چون مکهی که خوب اینه دیگه بیشتر خط نیستند نداشت مدینه به خاطر وجود یهودی ها کسایی که نوشتن و خواندن بردن زیاد بودن مدن خود مسلمان زیاد اما شهر کوفه از چون شهر کوفه هفت سال بعد از رحلت رسول خدا شد سال هجری شد. شهر کوفه چون بود این کسانی ای که شهر رو تشتید پادگان نظامی و ایرانی بوده و در اونها نوشتن و خواندن زیاد بود حسولا شهر کوفه یک شهر فرنگی حساب می شود تقرد می کنیم شهر کوفه یکی از و شاید هم خلاه بود که آثار تشکیح من که را مهارز کردن تولید ایل پیش ما چی در کوفه بین سالهای هشتا تا و پنجا این تولید علم یعنی مجموعه معارف ما در شای مختلف میرسه به این فتر مابین هشتا ساد در کوبه یک شهر فرنگی احتمال هم داره که تا واقعا مال حارس باشه حارس یک چشمی بوده احتمال داره مال حارس باشه چون مربول مللایی هم بوده ایرازان نوشتن ایرانی نیست که چون همدانیه که از اش از اشهاری مرافی که به کوف آماره برخواب باز ایشون داره که در دائم رووینا انجرفر ابن محمد از خدم سه جوه قراره رووینا رووینا رووینا شاد روویناش بهتر باشه لیکن بعدها که کتاب ایزاه رو دیدیم دیدم به ذهنم میاد روینا بهتر چون از کتاب ایزاه چون در ایزاه سند کامل میاره اینجا سند نداره در رساله ایزه اصلا اینکه من نگار همین باعث مکاسه چند سال پیش اثر کردم از اجایب اینه که ایشون با این که بعضی از این کتب در همون مصر بوده و مؤلفش هم اصلا اشاره به اجازه نداره مثلا حدثم او بلان فلان اجازه ندام حتی مؤلفی کتاب بنابر مبانی حدیثیش اصلا کمی گیر داره در اون زمان اگه کسی روی اجازات اختلاف یعنی میکرد اون مثلا رعیه هم فلا حدیث خیلی عجیبه مثلا همین کتاب جعفر کتاب به اصطلاح ها در اختیار ایشان بوده چند نرو میکنه خودش هم نمیگه کتاب الجعفریه ترجمه به کتب الجعفریه. فقط نمیگه خب سال جعفریات ده سال یا 8 سال قبل معاصر از ایشان بوده کرده معاصری تازه اون تو مسه بوده. هرگاه مثل هم معاصر است. یک جایی میگه اجازه می این کتاب خیلی عجیبه محمد رضا به ذهنم میاد اگر ما مثلا در عبارات صدوق روینا بکنیم، توی عبارات دائم روینا بخونیم روینا نکنیم، نخونیم روینا هم چون روینا به معنای اینه که این رو استاد من بر من روایت کرد و اجازه داد که من حدیث بکنم یعنی جهننی راویه لیزام روینا بخونیم ما به اما یک این, این مبنا رو نداره مثلا در کتاب مشیخی صدو همینطوره مثلا یه ماکان افیه انظرهای فقط روی تو اونجا روی تو بپنه روی بی... این اجازه است اشاره است که من فقط از کتاب نرمون میکنم از استاد تحمل کردم و اجازه داده من که من حدیث کنم این روینا اما این آقا من تازه روینا بخوندن این روایت عبارات دعایم رو با تأملی که بعضی یعنی اشعار بر ما پیدا شده که واقعاً ایشون چون معناش اینه ایشون دوباره اجازه نیست اصلا ایشون اهل اجازه نیست لذا به نظرم میاد که بهتر باشه راه اینا بکنیم یعنی من خودم دارم نرم میکنم نه اینکه به من اجازه داده به صورت ثیقه رو اینا درسته به نظرم میاد باید این راه اینا بکنیم ان شاء قباره ربی نما اجازه رسول محمد بن علی ان ابی ان ابی علی صلوات الله علیه قال سهر ربی ابن الاحن این چون داره ربی نما ان جعفر ان این دیگه اون کتاب قضایا و سنن نیست نمیشه که این کتاب قضایا و سنن نیست. چرا چون کتاب قضایا و سنن نه پیش ما و نه پیش خود سازدائم از طریق امام صادق نیست این یکی از دو تا یا کتاب جعفریات یا سکونی اگه این دو یکی باشن یکیه این تعبیر روی امام جعفر و محمد آل قال شهر لبید این درسته اونجا ابن عاصم قال الیهودی و ام عبدالله الله هم یهودیه حالا من این ام عبدالله الله واقعا نمیدونم ظاهر زنش باشه اما در کتب اهل سنت اونجا که دو هم ساحراس میدن لبید چند تا دختر باشه لذان در زیل آیه اگه آیه میخوانی پیدا بکنن همین در کتب احرسونت زیل آیه سوره قلع و قلع و دلپلت همین شب نقفاسات دخترهای همین لبیدن چون داره که یک نخیل رو گرفت هر گره که میزن یک گره میزن برد توی هر گره هم سودن پرو میبود توی از چند جاش که این باز نشه گره یک شیخو جربه وردی می‌خوند، تجویج می‌کرد، باز هر چند هر هم گره می‌زد 11 تا که بعد در یک چای انداخت ازش دو کرد و که بعد میگه نشون داد اون 12 تا گره‌ها رو باز کردن و پیغمبر پیغمبر اکرم دو معوذتین رو خوندن چون 11 آیه این دو تا با هم 11 آیه به هر این یکی از اون ها باز شد، سه هم و ام عبدالله یهودی رسول الله یه عقد خیوط من احمر و احسر فق عقد له فيه اهداء شيء ابو ده تا 11 تا گرفت سم جهلا في جف البته اینجا جف داره و که در مصادر عراقي بیشتر جف وك طلعه تل مال درخت خورماست درخت خورما وقتی که هنوز به نرسیده اون به حساب وجيزيش مثل حالت به حسابش داره اون در اون داخل پوست او قرار داد جفت مال او سم اخلافی درت نام بهر هم برده شده اینطور نمی‌دیشه اسم نواله سم جهلافی مراح ال بهر به مدینه این, این صحه که کرد به امام رسول الله لا و لا یسما علای یوسف غذا نمی خورد حتی اگه مثلا میرفت به غذا میگفت غذا غذا خوردن این بحث بحث هم کلامی پیدا کرده و هم بحث تفسیری و تاریخی این مطلب راسته یا نه اصلا اصلا این مطلب درسته که خیرم بر اون نفس مبارکه که دارن علاوه و اجل و شعنه از این که سه بزرگی اینجور تحصیل درشون بکنه بله برد یه بقیه آیه حالا اگر ما ماشین را جمعونم جزاگانه به نظر ما میاد که درست نباشه مطلب قابل قبول نباشه این راجعه به کتاب دائم که خوندیم و اینه که همچنان که در اون متن قردیم بود پیغمبر لبید رو نکشتن و این کار در مدینه شده خب پیغمبر لبید رو نکشتن بعد داره که پیغمبر همون که خدا تو از دنیا سالم درون نکنه و کان موسرم کفیران مان موسرم کفیران مان و مربیه غلامون یک بچه رفت شد توی گوش گوشواره بود گوشواره فجلب کردم بود چون پولدار را فیلی علاقه شدید پولدار جزو بزرگ بزرگان بود این گوشوار را کشید فخر من ازن را سبید بچه پاره شد و اخر فامیله بچه آمدن ایش میگردم فبوت عدیتوهو دستشو بریدن فکوی منه ها بعد به اصطلاح علاجش کرد یعنی به این معناه که وقتی دستو میبریدن یا روغن داغ درست میمونو توی روغن میبازن که اون رگها بسته و کوی منها فماد این که به اصلا بدونی که پیغمبر کاری بکنن خودش به این از دنیا رفت این راشد به این حدیث در کتاب تفسیر فرات کوفی اینجور آمده قال عبالخیر حدثنا عبالقاسم عبدالرحمن ابن محمد ابن عبدالرحمن علوی حسنی قال حدثنا فرات ابن ابراهیم آل حدث حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرو از اول شروع کنیم تا اونجا برسیم. عرض که این ابو احتمالا احتمالاً راوی کتاب فراشه استادش این قاله ابو الخير کسی است که این کتاب روایت کرده ابو من این شخصه الان نمی‌شناسم، که این در طبقه کسی است که این تفسیر علین الرایون نوشته. ممکنه همینم هم باشه اون ابو الفرج عباس محمد بل مازه مهم نمیشناسیم که اینجا ابو الخيرم الان نمیشناسید اما طبقه این هر کی در طبقه مؤلف کتاب تبیقه تفسیر علی بن ابراهیم فیصل مال علی بن ابراهیم که نیست خطا اصلا معلوم نیست چرا چون داره حدیث امام ابو القاسم عبدالرحمن بن محمد حسینی در کتاب تفسیر این تفسیری که به اسم علی بن ابراهیم معروفه دو تا حدیث من دیدم خیلی بیشتر نشون میوام که این از سابق شده مثلا تا دیگه دو تا حدیث دیدن که ایشون از فراط نمیدونن در تعصن همین شخص در هر دوون که حدثنا ابو القاسم عبد محمد نمیشناسید این سید رو هم که علوی حسنی نیست نمیشناسید به هر حال این اینا کسا نیستن که فرات ازشون نهر کرده اشتباه دکل پرمیدیم؟ اشتباه نشه قال حدثاً آفرات از اینجا تفسیر فراته حدثاً آفرات ابن عبرالین کوفی که اصولا نام ایشون در مسادن ما کتاب شهرست و نجاشی دیگر و دیگران نیامده و ارز کردم این تازیه من کردم این احتمال خیلی قدیه که ایشون جزء زیدی ها باشه قال حدثاً محمد و عبدالله نعمر خزاز احتمالا زیده های کوفه باشن که ما با اونها ارتباط علمی و فرهنگی نداریم آله حدث ابراهیم ابراهیم رو گفتی یعنی ابراهیم و محمده نمیمون الان تو ذهنم حضور زهن راجبین ابراهیم از نداریم ان ایسا اینجا نوشته ان ایسا یعنی ابن محمد ان جدی، ان امیر المؤمنین. نه باون. اینجا می جونده الا هن نفی امام النبی سلاسن سه دوست کنیم نه قدام بخوردن نه آوی و بلایست ملایوبسه الا آخر محله از کنم که این ایسا در اینجا این سابقه داریم می شنسیم این نبی عمرق علیه نبی طالبه این ایسا ایسر نه محمد ابن عمره نه علیه نهبیتان چون اولاد همی و مومنین غیر از حسن سلام الله علیه مجموعی سلام الله علیه ما هم محمد حنفیه عنوان خوب داره هم این عمر عمره نهبیتان این عنوان خرابان داره از دره تاریخی به لحاظ تاریخی حتی از محمد حنفی هم عنوانش بیشتره به خاطر این که یک مقداری سادات بزرگ و با شرافت و با, با کرامت این سادات این که از نفس این عمر هم. اینا معروف هست به سادات عمری علالوی این عمری علالوی اولاد همین جناب عمره علالوی هستن و چون زیادن یک عمری علی هم مال عمر فرزن در حضرت سجاد داریم اونم زیاده اونا هم عمری علالوی هستن اونا هم الذو در کتاب نسب این دو در کتاب نصاب خیلی عنوان داره محمد احنفی اینقدر عنوان نداره پیداستون حسن و حسین خوب عنوان اون کتابو نیست بعد از حسن این در کتاب انساب خیلی اون عنوان داره عمر در کتاب روایات ما عنوان نداره مو در کتاب انساب خیلی شخص عنوان داره عمر بن علی بن طلحه بینها این کتاب به المجری پیشینه بشید یه مدتی اصلا اینها نقیبول اشراف بودن مسئول سادات بودن سادات عمری علاوی همین مجزی که از این عمری ها نوشته یه عمری علاوی،, علا علا علاوی مراد به عمری علا علا علاوی اولاد این شخصه و در کتاب انصاب متعارف اونه که بلی اینکه این با عمره ابن علی ابن حسین اشتوانیشه چون عمر و پدرشم علیه یکی بیدرمون سجادی بیدرمون پسرمین و میگن بگه این یکی میگن بو اون جن عمر ال اشرف اگه بگم عمر ال اشرف عمر ابن علی بن ابی اما این معنی عمر اینجاست اما دست ال جاده. عمر فرزند از 70 ده تفرده نه یک طرف شرافتی عمر اشرف پدریشه بش اش اشرف میگن شرافت اون عمر هم از طرف پدر اندازه سجاده نصاب مادریشه عمر ال الان که ما کام ایشون پسری داره به محمد محمد چه این علمی روایی که شما نداره محمد پسر امام عیسی. ای این عیسا و پسر عیسی، پسر عیسی رو ما عبدالله. عبدالله بن ای عیسی، این تقریباً عبدالله بن ای عیسی معاصر امام صادقه. فکر کنه ایشون هم یک مجموعه روایی نقل می‌کرده، میراثیده بعضی رو ما. ما این بحث‌ها رو مفصل توضیح دادیم. دیگه جاشم اینجا نیست. از اولاد همیه رو که کتاب بیشان نسبت می دادن یکی خط حسینی ها بود گفته قرش بکنه خط حسینی ها توسط امام ساده و امام باغه رو مثلا امام ساده توسط سکونیم با انجربان هدیانها باروی یا دیگر اما خط حسینی خودشون کتاب مستقلی نسبت نمی دادن از در تاریخی بخواهم بگنم بیشتر اون کتاب ها و آغاز شنن و احکام ما نوعه میداده من آنم که رستم بود خودشون چیزی نداشته در تاریخ ما داره که عبدالله محض که بزرگ حسنی هاست این وقتی میخواسته چیزی بگه خطابه داره از این کتاب ها قضاهای همیرو مومینی از اونجا میابردن این خط عمری هم داریم. یه خط دیگه هم داری خط عمریه این نویشان عبدالله از پدرش عیسی از جدش عمر ببینید میشه عیسی یعنی ابن محمد این درسته این درست است خود واقعاً غلط چاپ شده یعنی. اینجا درست شده عیسی پسر محمد پسر عمر ابن علی نری شده ایسا از پدرش نام نمی کنه از محمد مستقیم از جدش نام میبره بله این نوشتاری بوده دقیق کتابی بوده اما موضوعیاتش عرض کرده، این کتاب بیشه سنیان بوده الان ما در کتاب اهل سنت داریم در کتاب اهل سنت؟ از همین کتاب داریم از عبدالله نیسا از عبیه انجردیه از, از عبیه قال و رسول الله ما کمتر داریم سنیان بیشتر دارن دقیق دو، خور. سنیان از این کتاب دارن تو مساده و سوچارشون نه در مثل سعی بخاری و کسابای معروبی شد تو ما هر دارن تو کسابای در جسده و چار دارن تقصیم این هم احادیثی هست که از امیر ما هم داریم یه البته یک جایی در استاد اشکال میکردن در سند حدیث لکه این سند در تو کامال زیاد هم هست چون ترجمه نکنه استاد اگر کامال زیاد قبول کردیم این سند بلاحظه اون جهاز هم درست میشه اینا توصیق ندارن ایسا توصیق ندارن امار ابن علی همونگه برانان امامزاده گیرد توصیق خاصی ندارن مرد بزرگواریست توصیق خاصی نداره لقدر میکنی و بنابراین حدیث برمیگرده به اون کتاب و این اون رو دیگه ما از آن در کتاب دعا داریم یعنی این حدیث از امیر المومنی شده از دو راه. یکی از راه سادات و حسیمین که ترسوت امام صادق انحبی همهرین یکی هم توسط صادات عمری که در تثیر فرات آمده صادات حسیدیشن در کتاب دائم آمده هیچ کدومشن در کتاب آمان نگی آمده نه صادات حسیدی نه صادات عمری در مسادر ما هیچ کدومشن آمده یکیش تو مسادر اسماییی ها آمده یکیشن تو مسادر زیگی ها